<تصفيق> أما زوابط جمع المؤنث الصال جمع المؤنث المؤنث الصالح الامثله سافرت المريمات حش گروه از مثال ها رو بخاطرين می بینید چرا بخاطر اینکه هشت تا شما الزينبات نمت الشجرات تمزقت الورقات تكلمت الكبريات اصغث الصغريات، اينا معنياشون واضحه. عجبتو من تلون الحرباوات. حرباوات ديگه چي هست؟ كشيفه باب الصحراوات. حربا بمانیه يكي بمانی يكي حيوانه کوچيكي هست. هميشه سمتشو به سمت خورشيد ميكنه. خورشيدي كتلو ميكنه، خورشيدو نگاه ميكنه. خورشید که دار میزنه زنه میگن نگاه می در ایرانی هم بیش می افتاب پرست افتاب گردان نه افتاب گردان درخت در در جز درخت چیه حالا ها می شه گیاه ها می شه من نمی دونیم ولی خودتون می دونید دیگه افتاب گردان چیز دیگه هست افتاب پرست چیز دیگه به کدون می گیی؟ افتاب گردان آره کشیفه بعد و صحراوات فابت النهیرات تسلقت تو تسلق به معنی بالا رفتن. ها جبال شامخات شامخ هم به معنی کوهای اسمن خراش و بسر بلندو میگند شامخ تو قرآن اومده سلکه قصور شاهقات شاهقات اومده یا نه اومده نخیل نصیبت سرادقات البته حضور ذهن خیلی مهمه سرادق تو قرآن و است احاطه بهم سرادقها سرادق به معنی سرا پرده میشه یا نه سوره کهف باشه کهف سرادق به نظر من سوره کهف جان سوره کهف بله احاط به هم سرادقها تو سوره کهفه بله خوب کثرت الحمامات اختبعت بنات و آوی بنات و آوی معنی شو بلدید؟ بنات و آوی بنات آوا. آوی معنی شو بلدید بنات آوا. آوی بنات و آوی من شدیدم این عربی شست بنات و آوی بنت و آوی هسترست ولی چون جنب بسته میشه این بنتش جنب بسته میشه بنات و آوا میدونید شغال رو میگن شغال بنت که میشه میشه شغال معده بنت و آوا آوا هم شغال معده رو میگه چی گفت چیکو درادیشین آره آره ریخته شده تعلیمش کردی هر روز دیگه چه معنی نه بنت و آوا به معنی شغال هست برادر بزرگوار مرت ذوات القعده بیایید خب. در قواعد چرا هشت گروه همسل را آورده خودش میگه چون در هشت جا جمع مؤنث قیاسی هست یطاردو جمع الموننس سالمو في ثمانیت موابعه جمع مترد هست جمع, جمع مؤنث سالم در هشت جا یعنی همیشه برساس این قاعده می جمعش می بندید یک اعلام الاناث علمهای معنیس یعنی همیشگی هست یک قاعده همیشگی هست قاعده کلی هست هشت جا علمهای معنیس مانند گروه اول امسل گروه اول المریمات و الزینبات ما بتا... کلماتی که با تا مختوم می شوند البته یک سری های آورده است مانند امرااتون شاتون امتون امتو و شفتو اینا رو استثناء کرده. این تو ها اینا فرق بله. خب منظور بزن بله. دقت داشته باشید دومین جایی که جمع موننس سالم بحث میشه کلماتی که با چه خاتمه میشه هم؟ الشجرات و الورقات که مفرد شجراتون و ورقتون هست جیم ما ختمه با الف تعنیس المقصوره کلمه که به علف مقصوره پایان یابد در این هم استثناء هست مانند اتشا دیگه اینو جمع و انت صالم نمی بندیم خوب جیم معنیم در و گروه 3 مانند کبرا و چغرا کبرا و چغرا چون آخرشون علف تحنیس مقصوره هست جمع و سالم بسته بستمی شوند کبرایات و چغرایت پس و جایی که بستمی میشه کلماتی که با علف تحنیس مقصوره پایان میابند دال ما ختمه به علف تحنیس الممدوده کلماتی که با علف تحنیس پایان پای البته این هم استثناهایی دارد مانند فعلاء که محننس افل است زرقاء دیگه زرقاء جمع محننس سالم بسه نمیشه همانطور که جمع مذکر سالم هم بسته نمیشه خب مانند مثل گروه چارون اه... عجب تو من تلون الحرباوات کشفه بعد صحراوات صحراه صحرا. میشه همون ولی باشه. بله. صحرا آخرش الف تعنیس ممدود هست. الف تعنیس مقصور نیست. الف تعنیس چیاست؟ پس چارمین جایی که یا چارمین نوع کلماتی که جمع معنی سالم بسته می شوند کلماتی که با الف تعنیس ممدوده ختم می شوند ها مصغر و مالا یعقل. اسم تشخیر کلماتی که مال ذوق و نیستند مانند دفاع با نهیرات. خوابت نهیر جمع محنسش میشه نهیرات جبل جمع محنسش میشه چی؟ جبیلات پس جایی که جمع محنس سالم بست میشون مسغر مالای هست بله واب صفت مالای عقل صفت انچه که عقل هست مانند شیش ها جبال شامخاتون تون شامخاتون, شامخاتون. تلک قصورون شاهق ببینید شامخ صفت زوال یا غیر زوال اقول صفت قصره بابا صفت جباله پس این نوع صفات موقعیت جمی بندیم چی نوعی جمی براشون بیاندیم قبلا گفته بود صفاتی که مال زوال اقول بودند اولارو جمع مذاکر بیاسیم مثلا آلم آلمون آره ولی صفات ایمانی شامخ که صفت غیر ذوالعقله جمع سالم نصالن باشه میشه کل خماسین لم یسمع له جمع تکسیر هر کلمه هر اسم پنج حرفی که جمع تکسیر نداشته باشه هر کلمه خماسی یعنی پنج حرفی که لم یسمع له جمع تکسیر جمع مکسری از این شنیده نشده است مانند سرادق کلمه پنج هر است، آه پنج است. نصیبت سرادقات، سرادق کثرت الحمامات، شامخ البته درد، فران اومده است، سرادق هم اومده است. خب ما صدرون ماسود دیره. بابنین اوزی من اسماء مالای عقل کلمه ای که صدرش ایبنی یا زی هست از اسمه هایی که مال زوال اقول نیستند معنی دی گروه حشتون اختبعت بنات و بناتو بنات و این یک کلمه از دو قسمت تشکیل شده قسمت اولش کلمه چه هست؟ بله ابن هست <تصفيق> بله، زماننده زل قاعده، زل قاعده. که البته جنبه میشه. دیگه همون ابنو مفرد مفرد بناتو آوا می دونید چی ابنو آوا. ابنو موریکشون میخواد ابن آوا رو جنبه بندید. موقعی که میخواد دیگه نمی بنونی بنو آوا. میگید بنات و آوه نگید چه؟ پس کلمهی که صدرش اون ریاضی باشه مثلا مفرد زوات القعده ذل قعده هست ولی زیرو موقعی که ما جمع بندیم؟ دیگه جمع موننسش میبندیم جمع چیش میبندیم؟ جمع موننس که میشه زوات و القاعده. یلو فهمیدیت؟ نه؟ بله. بله. کلماتی که قبلشون همیشه ابن یا زیدارن صدرشون که میخوام جنب ببندیم جم مونست ببندیم. یعنی اولین قسمتش. پس اینها بودن زوایبته جم مونست سالن ابن آوا مفردش هست. بنات و جمش هست. ذل قعده یا ذل قعده مفردش هست و جمعش هم چی هست خب این قاعده سدو کندوم بود بود بود قائدية السادو شاسو سيوم يلحق بجمع المؤنس السالم في عرابه أولاته وما سمي به كبركات وعرفات ملحق مشواهد بجمع المؤنس السالم در عرابش فلمي أولات در قرآن ومجاس وأولات الأرحامي وأولات الأحمالي لا وأولات الأحمالي ون اولل ارهام اس كه من گفتم وا اولل بعضهم ببعض في كتاب الله اما اولاد هم اومده وا اولات در سوره طلاق اومده یانه اومده ها یانه بله به چی چیزی مول ها کنشه؟ به جای مانس سالم